اشيران تو روزگارای قدیم پادشاه و ملکه ای زندگی می‌کردند که فقط یه پسر داشتند پادشاه پسرش رو خیلی دوست داشت اما ملکه از اون متنفر بود چشم دیدنش رو نداشت زمانی که پسرک به سن دوازده سالگی رسید پدرش رو از دست داد و شرایط برای اون بدتر شد چون توی این دنیا خودش رو کاملا تنها احساس میکرد. ملکه بیش از حد عصبانی بود. چون مردم از بدجنس بودن اون هم آگاه بودن به خاطر همین پسر پادشاه رو به جای ملکه جانشین کردند. ملکه به این فکر میکرد که هر طور که شده پسرش رو از بین ببره. خوشفختانه پادشاه جوون ما خیلی عاقل و محتاط بود. و می دونست که نباید به مادرش اعتماد بکنه. روزی از روزها بعد از پایان مراسم سوودواری پادشاه پسرک دستور داد که مقدمات کار برای رفتن به شکارگاه آماده بشه. ملکه ظاهرا وانمود می کرد که از رفتن پسرش به شکار خیلی خوشحاله به خاطر همین تصمیم گرفت که اونها رو توی این سفر تفریحی همراهیشون کنه پادشاه جوون به مادرش گفت مادر من راضی به اومدن تو نیستم. زمین ناهمواره ممکنه زمین بیفتی و آسیب ببینی. اما مادر هیچ اعتناعی به توصیه‌های پسرش نکرد. صبح روز بعد بعد طلو آفتاب ملک هم همراه بقیه به راه افتاد. اونها تموم روز با از توی جنگل تاختن چون شکار خیلی زیاد بود. نزدیکی های غروب، مادر و پسر دور از چشم همراه های خودشون توی قسمتی از جنگل به یه مکان خیلی عجیب رسیدن. اونها بی هدف به هر طرف می رفتن. تا اینکه با مردی روبرو شدن. پادشاه جوان و ملکه از اون مرد خواستن که شب رو بهشون پناه بده. اون مرد بعد از دیدن این دو نفر خیلی خوشحال شده بود و بهشون گفت همراه من بیاید. اون یه آدمخار بود از گوشت انسانا تغذیه میکرد. پادشاه و مادرش همراه اون مرد وارد خونه‌ی مرد آدمخار شدند وقتی به اونجا رسیدن تازه فهمیدن وارد چه مکان ترسناکی شدن. در مقابل مرد آدمخار زانو زدند و بهش التماس کردند که کاری به اونها نداشته باشه در مقابلش هر چقدر پول و طلا بخواد بهش میدن. آدمخار با دیدن چهره زیبای ملکه شیفته اون شد. قول داد که آزاری بهش نمیرسونه. اما در عوض پسرک رو با چاقو کشت و جسدش رو روی اسب گذاشت، با تناب اون رو تناب پیچ کرد و اسب رو همراه با جسد توی جنگل رها کرد. مرد آدمخوار به طور اتفاقی جسد رو درست روی همون اسبی گذاشته بود که روز قبل اون رو خریده بود و خبر نداشت که اون اسب قدرت جادویی داره و یعنی اونقدر هم احمق نبود که چنین کال رو انجام بده از همراه با جسد شاهزاده چهار نل به طرف رودخونه پریا رفت وقتی که دم در خونه پریا رسید با سوم خودش به در خونه پریا کوبید پریا صدایی در رو شنیدن اما ترسیدن در رو باز کنن تا اینکه وقتی از پنجره طبقه بالا بیرون رو نگاه کردن و دیدن که از گور و مرد آدمخوار خبری نیست و خطری تهدیدشون نمیکنه، یکی از اونها فریاد زنان گفت نگاه کنید یه اسب پشت دره و جسد یه مرد خوش سیما و جذاب هم روی اونه پریا دوان دوان به سمت در خونه رفتند و در باز کردند اصد رو به داخل خونه آوردند پریا تناب را رو که پادشاه با اونها به اسب بسته شده بود رو باز کردند دور پادشاه حلقه زدند و محو زیبایی شده بودند بعد هم تو گوش پسرک نجوا کردند ما تو رو دوباره زنده میکنیم و تو می شی برادر ما اونها این کار رو انجام دادن و پسرک دوباره زنده شد سالیان سال در کنار هم مثل خواهر و برادر زندگی کردند پسرک کم کم رشد کرد و یه جوون برومند شد یه روز یکی از اون پریا که از همشون بزرگتر بود به خواهرش گفت من مایلم با این مرد ازدواج کنم اون وقت اون برادر واقعی شما میشه پادشاه جوون با بزرگترین پری ازدواج کرد و با شادمانی زندگی مشترک خودشون رو توی قصر شروع کردند پادشاه جوون با وجود اشق و علاقه شدیدی که به همسرش داشت اما هنوز در آرزوی اون بود که بیشتر نقاط دنیا رو ببینه. به خاطر همین علاقه شدید دیگه صبرش لبریس شد. در نتیجه روزی همه پریا رو پیش خودش جمع کرد و گفت همسر عزیزم و خواهر مهربونم. من ناچارم برای مدتی شما رو ترک کنم. اما همیشه به یادتون هستم و یه روز دوباره پیشتون برمیگردم میگردم. شروع کردم به گریه بزاری، از اون خواستن که از رفتن به این سفر چشم پوشی کنه اما پادشاه جوون به التماس هاشون توجه نکرد. آقابت هم همسر پادشاه به اون گفت حالا که اصرار داری به این سفر بری و ما رو ترک کنی پس دسته ای از موهای منو همراه خودت نگه دار. من مطمئنم که تو مواقع ضروری حتما بهش نیاز پیدا می کنی. بعد هم یه دسته از موهای خودش رو قیچی کرد و به پادشاه داد. شاهزاده جوون جوان سوار بر اسبش شد و تمام روز رو بدون لحظه ای توقف با اسبش تاخت نزدیکی های قروب به یه بیابون رسید هر جوری که نگاه کرد نه کلبه ای دید و نه آدمی زادی با خودش فکر کرد و گفت حالا بیاید چیکار کنم اگه همینجا بخوابم حیوانای درنده منو میخورن. خورن به علاوه، نه خودم رمقی دارم و نه اسبم اصلا نمیتونم قدم از قدم بردارم. همون موقع به یاد هدیه همسرش افتاد. دسته موهای همسرش رو در آورد و بهش گفت: من توی این صحرای خشک به یه قصر و یه تعداد خدمتکار نیاز دارم. به همینطور یه شام درست و حسابی و هر چیزی که مایه آرامش و راحتیم باشه. در زن یه استبل و یه مقدار علوفه هم برای اسبم میخوام تو چشم به هم زدن آرزوی پادشاه برآورده شد قصر شکوهی در برابر چشماش ظاهر شد شاهزاده با استفاده از این شیوه سرزمینهای زیادی رو پشت سر گذاشت آخرش وارد قلمروی شد که توسط یک پادشاه مقتدر اداره میشد شاهزاده اسبش رو بیرون دروازه های شهر گذاشت و لباس ای پوشید و راهی قصر پادشاه شد. همسر پادشاه از پنجره قصر بیرون رو نگاه میکرد. پادشاه جوون رو دید و دلش به حال اون سوخت. به یکی از خدمتکاراش گفت که پیش اون بره و ببینه که اون کی و از کجا میاد. چی میخواد؟ پادشاه جوون به خدمتکار گفت من تو سرزمین شما یه قریبم. خیلی هم فقیرم. مادم اینجا تا دنبال کار بگردم. ملکه در جوابش گفت ما نیاز به خدمتکار جدید نداریم. یه دربون و یه باربرم داریم و همینطور خدمتکارای زیادی داریم که کارهای قصر رو انجام میدن. تنها چیزی که کم داریم یه قاسچرونه. به خاطر همین ملکه به خدمتکارش گفت که به اون مرد بگو در صورت تمایل میتونه قاسچرون قصر باشه. و به این ترتیب پادشاه جوون به قاسچرون معروف شد. اون برای این شناسایی نشه و همه اون رو در حد یه قاسچرون ساده بدونن لباس های کهنهی پوشید و صورتش رو هم گرالود کرد. چنان سرواز کسیفی پیدا کرده بود که هر کس رو میدید راهش رو کج می کرد. تا چشمش به قیافه ژولیده و کثیف اون نیفته. بعضی وقتا ملکه بهش می برو به سرواز خودت برس. اما از اونجایی که قاسچرون کارش رو به خوبی انجام میداد ملکه ازش راضی بود. اما قاضی در جواب ملکی بهش میگفت اعلی حضرت من با همین سر جوریده احساس آرامش میکنم بعد هم سوت زنون صراغ قاضی میرفت یک روز به خاطر اینکه همه آسیاب های شهر از کار افتاده بودن و دیگه نونی هم پخت نمیشد در نتیجه مردم شهر و سپاهیان پادشاه نونی برای خوردن نداشتند وقتی پادشاه از این موضوع با خبر شد آشپز قصد رو احضار کرد و بهش گفت تا صبح روز بعد فرصت دارید به اندازه هفت و تنور نون آماده کنید. آشپز قصد در نهایت درموندگی جواب داد این کار غیر ممکنه حضرت چون آسیاب های شهر به تازگی همشون خراب شدند و از کار افتادند و من نمیتونم این مقدار گندم رو آرد کنم و نون تهیه کنم. پادشاه در جواب گفت اگه موفق به انجام این کار بشی دخترم رو به ازدواج تو در میارم. وگرنه سرت رو از بدن جدا میکنم. همون موقع قاسشرون در حال گذشتن از راه روی بود که حرفهای پادشاه رو شنید. به اتاق پادشاه اومد و بهش گفت اله حضرت نگران هیچ چیز نباشید. من همه اون نونهایی رو که دستور دادید آماده میکنم. پادشاه جواب داد بسیار خوب. اما اگه نتونی این کار رو بکنی سرت رو به باد میدی بعد هم پادشاه با اشاره دست هردوی اونها رو مرخص کرد آشپز قصر با این کس خطر بزرگی رها شده بود اما هنوز تا پای بدنش میلرزید اما قاسشرون خیلی آروم بود و کوچکترین احساس نگرانی هم نمیکرد وقتی که شب شد قاسشرون رفت که بخوابه خدمتکارای قصر وقتی اون رو دیدن که در نهایت آرامش آماده خوابیدن شده فریاد زدند و گفتند تو چرا انقدر بیخیالی؟ باید از هر لحظه این شب استفاده کنی و کارت رو انجام بدی فراموش نکن که پادشاه با هیچ کس سر شوخی نداره قاصرون در حالی که خمیازه می کشید جواب داد قبل از هر چیزی باید بخوابم بعد هم روی تختش دراز کشید و به خواب عمیقی فرو رفت یه ساعت بعد خدمتکاره قصد دوباره اون رو از خواب بیدار کردند و بهش گفتند آهای قاس شرون مگه تو عقلت رو از دست دادی زود مش از سر جات بلند شو کارت رو انجام بده وگرنه سرت رو به باد میدی قاس شرون در جواب اونها بهشون گفت خواهش میکنم بذارید یه کم دیگه بخوابم. خوابم خدمتکارای قصر بارها و بارها سراغ اون رفتند و به اون هشدار دادن ولی قاس شرون از روی تختش بلند نشد که نشد دیگه صبح شده بود خدمتکارای سراسیمه و مسترد به اتاق قاسچرون اومدند و گفتند آهای قاسچرون بلند شو پادشاه یه راست داره به سمت اتاق تو میاد ولی تو هیچ نونی نپختی مطمئن میمیری. قاسچرون از سر جاش بلند شد و گفت اوه چه خبره قداد نزنید بعد هم دسته موهای همسرش رو به دستش گرفت و راهی آشپزخونه شد یه نگاهی به اطراف انداخت بعد توی چشم به هم زدن سه، چهار، پنج و شیش تنور نون روی هم انباشته شدن نونای تنور هفتم هم در حال آماده شدن بودن خدمتکارا هاج و واج به این صحنه نگاه میکردن وقتی پادشاه وارد شد گفت کارت عالی بود قاس چرون دخترم مال تو میشه بعد پادشاه با خودش گفت این جوون باید یه جادوگر باشه اما وقتی دختر پادشاه با خبر شد که باید با قاسچرون ازدواج کنه، های های زد زیر گریه و گفت من هرگز با این قاسچرون جنده پوش و بی سر و پا ازدواج نمی کنم. اما پادشاه به آهوناله های دختر شیچ اعتناعی نکرد و چند روز بعد مقدمات ازدواجشون برگزار شد. قازشرون بدون اینکه دست و روش رو بشوره و سراوز خودش رو برای این مراسم آماده کنه، با دختر پادشاه ازدواج کرد. وقتی شب شد، قاسچرون مثل هر شب پیش قاسهاش رفت تا پهلوی اونها بخوابه و شاهزاده خانم هم پیش پدرش رفت و گفت پدر، می میکنم این قاسچرون رو به مجازات مرگ محکوم کنید. پادشاه در جواب دخترش گفت نه، اون یه جادوگر بزرگه. قبل از اینکه اون رو بکشم، باید از اسرار قدرت جادوگری اون باخبر بشم و تا اون زمان باید ببینم چی کار میتونم بکنم بعد از این ماجرا جنگ شروع شد. همه اهالی قصر دست به کار آماده کردن سلاح‌ها ها و زره‌ها ها چون قرار بود که توی این نبرد پادشاه و فرزندانش هم شرکت کنن. قازشرون هم هاش رو به امان خدا رها کرد و سراسیمه پیش پادشاه اومد و گفت منم مایلم توی این جنگ شرکت کنم. پادشاه بهش اجازه داد تا به استبل عصب ها و هر کدوم از اونها رو که خواست انتخاب بکنه قاسچرون اسب‌ها ها رو با دقت بازرسی میکرد و به جای انتخاب یکی از اون اسپ سرزنده و چابک که پوستشون مثل پارچه حریر برق میزد یه اسب لاغر و لنگ انتخاب کرد بعد هم زینی روی اون گذاشت و سوار شد و پشت سر سپاهی های پادشاه راه افتاد بعد از طی کردن یه مسافت کوتاه، قاسچرون توقف کرد و به سپاهیان پادشاه گفت عصب من قادر به ادامه راه رفتن نیست. من نمیتونم شما را همراهی کنم. من همینجا توقف میکنم و سربازای گلی میسازم و خودم رو با یه جنگ نمایشی سرگرم میکنم. سپاه پادشاه از شنیدن این حرف‌های کودکانه خندهشون گرفت. اونو به حال خودش رها کردند و بعد هم پشت سر پادشاه به افتادند. هنوز سپاه پادشاه زیاد دور نشده بود که قاسچرون دسته موهای همسرش رو بیرون آورد و آرزو کرد که بهترین زره و سلاح و تندرو ترین اسب دنیا رو داشته باشه. توی چشم به هم زدن قاسچرون سوار یه اسب تیزرو و غرق در سلاح و زره به سمت میدون جنگ حرکت کرد. وقتی که به میدون نبرد رسید جنگ شروع شده بود. نیروهای دشمن به سپاه پادشاه برتری داشتند. وقتی که قاس وارد میدون شد نفرات دشمن رو چپ و راست روی زمین مینداخت سپاه دشمن خیلی ترسیده بود به خاطر همین فرار رو به قرار ترجیح دادن وقتی که جنگ به پایان رسید پادشاه اون رو پیش خودش صدا کرد و به خاطر کمک به موقع اون ازش تشکر و قددانی کرد و به اون گفت تو جنگجوی شجایی هستی هر پاداشی که از من بخوای بهت میدم قاسشرون تو جوای پادشاه گفت من چیزی ازتون نمیخوام به غیر از انگشت کوچیکتون پادشاه انگشت کوچیک خودش رو قطع کرد و به اون داد بعد هم قاسشرون در برابر پادشاه سر تعظیم فرود آورد و میدون نبرد رو ترک کرد سپاه پادشاه توی مسیر برگشت قاسشرون رو تو همون محلی که سرگرم ساختن سربازای گلی بود پیدا کردن فردای اون روز پادشاه راهی میدون جنگ دیگه ای شد دوباره قاسشرون سوار بر همون اسب لنگون خودش پشت سپاه حرکت می کرد این بار هم بین راه توقف کرد و مثل سابق مشغول ساختن سربازای گلی شد بعد هم دور از چشم سپاه پادشاه آرزو کرد که بهترین اسب تیز رو بهترین سلاح ها رو داشته باشه. قاس غرق در سلاح و زره سوار بر یه اسب تندرو تند رو تاخت به دنبال سپاه حرکت کرد. اون درست لحظه ای وارد میدون جنگ شد که سپاه پادشاه توسط نیروهای دشمن عقب رانده شده بودند. اونها در حال عقب نشینی بودن به همدیگه میگفتن، اگه اون جنگجوی شجاع از راه نرسه، مرگ ما حتمیه. یه دفعه یکی از افراد سپاه فریاد زد نگاه کنید. اون داره میاد. این بار اسبش تند روتر از دفعه قبل داره حرکت میکنه. زره و سلاحش هم بیشتر از دفعه قبل برق میزنه. سپاه پادشاه با دیدن اون جون ای گرفتن. روحیه از دست رفته خودشون رو پیدا کردند. در برابر نیروهای دشمن مقاومت کردند. تا اینکه که شوالیه شجاع از راه رسید و یک راست به قلب سپاه دشمن حمله شد. مثل دفعه قبل نیروهای دشمن از دیدن اون هراسون شدند و فرار کردند. این بار هم سپاه پادشاه پیروز شد. اولین کاری که پادشاه انجام داد این بود که دوباره شوالیه رو پیش خودش احزار کرد و ازش به خاطر کمکهای بیدریغش تشکر کرد و به شوالیه شجاع گفت هر پاداشی که بخوای من دریغ نمی کنم و به تو اهدا می کنم شوالیه شجا جواب داد اله حضرت من یکی از گوش شما رو می خوام پادشاه یکی از گوش خودش رو برید و به قاس داد قاس بعد از گرفتن گوش پادشاه اون رو توی جیب جلیغش گذاشت و تاخت کنان از میدان نبرد دور شد نزدیک های غروب وقتی سپاه پادشاه در حال برگشت قازشرون رو دیدند دیدند که مثل بار قبل مشغول ساختن سربازهای های گلیه. روز سوم پادشاه وارد نورد دیگه ای شد و این بار غازشرون به عنوان پاداش خواستار دماغ پادشاه شد. اما از دست دادن دماغ بدتر از نداشتن گوش یا انگشت بود. این بود که پادشاه در مقابل این تقاضای شوالیه جنگجو کمی صبر کرد اما از اونجایی که همیشه به خوشغولی خودش میبالید به این تقاضا هم جواب مثبت داد دماغش را برید و به قاسشرون داد قاسچرون دماغ پادشاه رو گرفت و توی جیب جلیغش گذاشت بعد هم سر تعظیم فرود آورد و تاختکنان از میدان جنگ خارج شد نزدیکی های غروب وقتی که پادشاه و سپاهیانش از میدون جنگ برمیگشتند بار دیگه قاسچرون رو در حال ساختن سربازای گلی دیدن قاسچرون از جای خودش بلند شد و پادشاه گفت من و میشناسی من همون قاسچرون ژندهپوش و کسیف شما هستم که گوش و انگشت و دماغت رو به من دادی اون شب وقتی پادشاه سر میز شام نشست قاسچرون وارد شد دماق و انگشت کوچیک و گوش پادشاه رو روی میز گذاشت و بعد هم به درباریا و اطرافیان پادشاه گفت من همون شوالیه شکست نپذیرم که سه بار به کمکتون اومدم. من خودم پسر یه پادشاه هم. نم گازچرونی که شما فکرش رو میکنید. بعد هم از سالن بیرون رفت و سر صورتش رو شست لباس های ای پوشید و دوباره نزد پادشاه و اطرافیانش برگشت. اون توی این لباس های زیبا اینقدر سیما و جذاب شده بود که دختر پادشاه همون نگاه اول عاشق اون شد. اما قاصشرون هیچ اعتناعی به دختر پادشاه نکرد. بعد هم رو پادشاه کرد و گفت: از اینکه راضی شدید دخترتون با من ازدواج کنه، دهنده بزرگواری و محبت شما بود. من از شما ممنونم. اما من همسری دارم که اون رو خیلی دوست دارم. باید به سراغ زندگی خودم برم. و پیش از خداحافظی لازمه که گوش و دماغ و انگشت شما رو سر جای قبلیش برگردونم. قاسچرون بعد از گفتن این حرفها و انجام دادن کاراش از همه اونها خداحافظی گرد و پیش همسر خودش برگشت و اونها تا آخر عمر با خوشی و خوبی در کنار همدیگه زندگی کردن. سفر به دنیای پر رمز و رازه افثانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قصر های و مهمانی های بزرگ شاهانه